حمد و ستایش از آنی الله دانای آگاه است هیچیز همانند نست و او شنوای بیناست و اوست الله معبود در آسمانها و در زمین نیهان شما و آشکار شما را می و آنچی به دست می و انجام می دهید می و کلیدهای غیب نزد اوست و جز او کسی آنها را نمی داند.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 و نهج تر و خشکی وجود دارد مگر اینکی در کتاب آشکار یعنی لوح محفوظ ثبت است و گواهی میدی هم که جز الله معبودی به حق نیست رازها و پینهان تر از آنها را میداند و هیچ چیزی در زمین و آسمان بر او پینهان نیست معبود شما تنها الله است که جز او معبودی نیست و علم او همه چیز را فرا گرفته است و گواهی میده هم این محمد بنده و فرستاده الله است الله متعال او را به این فرموده اش توصیف نموده است و اونچی را به تو آمخت و فضل الله بر تو همیشه بزرگ بوده است الله درود بفرستد بر او و بر خاندان و یاران و پیروانش و سلام بفرستد بر آنان سلامی فراوان. اما بعد پس ای حجاج بیت الله و ای مسلمانان در هر که هستید تقوای الله متعال را پیشه کنید سرانجام به کامیابی و نجات و سعادت در دنیا و آخرت دست می یابد. الله متعال فرموده است و اگر آنان ایمان می آوردند و پرهزگاری می کردند همان پاداشی که نزد الله وجود دارد برایشان بهتر است اگر میدونستند و نیز او تعالی فرموده است و تقوی الله را پیشه کنید و بدانید که الله با پرهزگاران است و فرموده است و تقوای الله را پیشه و بدانید که الله به همه چیز داناست و چگونه ما الله را پیش نکنیم و او تعالی را عبادت تخصیص ندهم در حالی که اوست نافع دار یعنی منفعت بخشنده زیان دهنده الله متعال می فرماید و اگر الله زیانی بتو برساند پس جز او هیچ کس نتواند آن را برطرف کند و اگر اراده خیری برای تو کند پس هیچ کس فضل او را باز نتواند داشت فضل خود را به هر کس از بندگانش که بخواهد میرساند و او آمرزندهی مهربان است و الله متعال میانی تقوی و آموزش رفت نموده می فرماید. و تقوی الله را پیش کنید و الله به شما آموزش می دهد و الله به همه چیز داناست. و البته از پیش کردن تقوای الله است که بدان چی الله ما را به سوی آن فرا است اجابت نمائم از توحید و افراد او تعالی به عبادت و عدم صرف چیزی از عبادات برای غیر الله هر کسی که باشد ای مردم پروردگاری خود را عبادت کنید آن ذاتی که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا پرهزگار شوید آن ذاتی که زمین را برای شما بگیسترید بیک... و آسمان را همچون سقفی بالای سر شما قرار داد و از آسمان آبی فرو فرستاد و با وسیله آن انواع میوه ها را به وجود آورد تا روزی شما باشد بنابراین برای الله همتایانی قرار ندهید در حالی که میداند و این همان دعوت تمام پیامبران است چنانی که ابراهیم علیه السلام به قوم خود گفت الله را عبادت کنید و تقوای او را پیش کنید که اگر بدانید این برای شما بهتر است. و حقا که الله متعال کتابها را نازل کرده و پیامبران و فرستادگان را به عنوان آموزگاران برای هایشان و دعوتگران به سوی توحید و تخصیص الله به عبادت فرستاده است. پس هر پیامبری از پیامبران به قوم خود میفرمود، ای قوم من، الله را عبادت کنید که جز او معبود راستین برای شما نیست، آیا پرهزگاری پیش نمی کنید؟ پس از امور واضح و مسلم این بود که توحید و تخصیص الله بر عبادت همان معنای شهادتی اله الله اله الا الله است الله متعال می و الله فرمود برای خود و معبود نگیرد فقط او معبودی یگانه است پس تنها از من بتررس و آنچهی در آسمان ها و زمین است از آنی اوست و نیز دین پایدار از آنی اوست آیا از غیر الله میترسید؟ و آنچی از نعمت دارید، پس همه از جانب الله هست، سپس هنگامی که ناراحتی به شما رسد، باز به سوی او زاری می کند، سپس هنگامی که آن ناراحتی را از شما برطرف ساخت، آنگاه گروهی از شما به پروردگارشان شرک می آورند، تا آنچی را که به آنان داده ایم کفران کنند، پس چند روزی بهره گیرید که به زودی خواهد دانیست، فس شهادة توحيد براي الله و شهادة رسالة براي محمد صلى الله عليه وسلم همانا سبب دستیابی بر رضایت الله و سبب نجات در روز قیامت است و از مدلور شهادت رسالت تصدیق محمد صلی الله علیه و سلم است در آنچه از آن خبر داده است و اطاعت از اوست در آنچه بدان دستور داده است و عبادت, و عبادت الله است بگونه که او بیان نموده است چنانچه الله سبحانه فرموده است ای پیامبر ما تو را گواه و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادم و دعوت کننده به سوی الله به فرمان او و چراغی روشنی بخش قرار دادم و شهادتین رکن اول از ارکان اسلام است چنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید اسلام بر پنج ستون استوار است گواهی دادن که معبودی به حق جز الله نیست و اینکه محمد فرستاده ای الله است و نماز بر پا داشتن و زکات پرداختن و ماه رمضان را روزه داشتن و خانه کعبه را حج کردن برای کسی که توانی رفتن به آن را داشته باشد و رکن دوم بر پا نماز است. الله متعال می فرماید و نماز را بر پادار دار. یقینا نماز انسان را از زشتی ها و منکر باز می دارد. و البته یاد الله بزرگتر است و الله آنچی را انجام میدهد می داند. و زکات قرین نماز است در کتاب الله و همانا رکن سوم از ارکان اسلام است و عبارت از این است که فرد غنی و توانگر حسی از مال خود را به مسارف زکات بپردازد که این کار چیزی از از محاسین و خوبیهای دینی اسلام را در راستای همبستگی اجتماعی نمایان می و همکاری در منافع عمومی میباشد باشد و از ارکان اسلام روز داشتن ماه رمزان و حج بیت الله الحرام است الله متعال می و برای الله حج خانه کعبه بر مردم واجب است البته کسانی که توانایی رفتن به سوی آن را دارند و البته الله متعال بر شما ای حجاج فضل نموده است آنجا که برای شما راه های انجام فریزه حج را آسان کرده است پس در انجام آن از رهنمود پیامبرتان صلی الله علیه و سلم پیروی کنید چون او فرموده است از من مناسک حجتان را فراگیرد و الله متعال می حج در ماه های معلوم و معین است پس کسی که در این ماه ها حج را بر خود فرض گرداند باید بداند که در حج آمیزش جنسی و گناه و جدال روان است و آنچه از اعمال نیک انجام دهید الله آن را میداند و تو برگیرید که بهترین توشه پرهیزگاری است و ای خیرمندان از من بی پرهزد. یعنی از من بیترسید چنانچی پیانبر صلی اللہ علیه و سلم دیگر مراتب دین را بیان نموده است پس احسان این است که الله متعال را چنان عبادت کنی که او را میبینی پس اگر تو او را نبینی او حتما تو را میبیند و ارکان ایمان عبارتند از اینکه به الله و فرشتگانش و کتابهایش و فرستادگانش و روز آخرت و تقدیر الهی اعم از خیر و شر آن ایمان بیاوری پس ای حجاج بیت الله و مسلمانانی که در هر جا هستید شما و خودم را به پیش کردن تقوی الله متعال سفارش می کنم چون آن بهترین توشه است همچنین شما و خشتن را به شتابیدن به سوی انجام کار خیر سفارش می کنم الله متعال می فرماید و به سوی آمرزوشی پروردگارتان و به هیشتی پهنای آن به قدری آسمانها و زمین است و برای پرهزگاران آماده شده است، بیشتابید، و نیز او سبحانه هم می فرماید و کاری نیک انجام دهد باشد که رستگار شوید، و بدانید ای بندگانی الله که از شتابیدن در کاری خیر اهتمام به تطبیقی ارزشهای اسلام است، ارزش‌هایی که رفتاری مسلمان را رسم نموده پس آن را به بهترین پالایش پالوده است و پیامبری گرامی ما صلی الله علیه و سلم در ارتباط با این ارزش‌ها چنان بود که پروردگارش جل و علا او را توصیف نموده و فرموده است و یقینا تو ای محمد بر اخلاق و خوی بسیار عظیم و والایی هستی و او علیه السلام است که فرموده است یقینا از محبوب ترین شما نزد من و ترین شما به مجلس من روز قیامت خوش اخلاق ترین شما است و اخلاق خوب در وصف عام ارزش است بین تمام مردم مسلمان و غیر مسلمان از آن قدردانی می کند. چون آن رفتار است در گفتار و کردار اللهی متعال می فرماید به مردم سخن نیک بگوید و میفرماید و و گیز نیکی و بدی یکسان نیست همیشه به نیکوترین شه و پاسخ ده پس ناگاه می همان کسی میانی تو و او دشمنیست گوی دوستی دوست سمیمیست و در رویارویی با جهل و بخیردی الله سبحانه و تعالی می فرماید ای پیامبر گذشت را پیشه کن و بنیکی فرمانده و از نادانان روی بگردان. همچنین الله سبحانهو می پس ای پیامبر صبر پیشه کن بگمان وعده الله حق است و هرگز کسانی که یقین ندارن تو را سبک سر نگردانند و معنای آیا این است که برحضر باش از این که تو را به درگیری و نو گفتن و پیامدهای آن ببرند. و مسلمان با ارزشهای استوارش به فرد جاهل و مغریز و بازدارنده نمی و همیشه این فرموده الله متعل را در خاطر دارد و هنگامی که سخن لغو و بهود بشنوند از آن روی میگردانند و گویند اعمال ما از آنی ماست و اعمال شما از آنی شما سلام بر شما خاستار جاهلان نیستم همچنین امید آنند که درگیری با این گونه مردم باعثی شهرت آنان و کامیابی پروژه‌ی ایشان می‏شود و این چیزی است که آنان به آن خوشحال میشوند، بلکه بیشتر بلکی بیشتری آنان بر این روش اعتماد دارند. مگر باید خطرهای فریبکاری آنان کشف شود. همچنین باید در برابر بدی آشکاری آنان استادگی شود و همه این کارها با حکمت اسلام انجام گیرد حجاج بیت الله، ای مسلمانان، یقینان از های اسلام همانا دوری گزیدن همانا دوری گزیدن است از آنچه منجر به نفرت و کینه و تفرقه می شود و این که باید در تعاملات ما محبت و مهربانی دو جانبه حکم فرما باشد و این ارزش ها در پیشا معانی تمسک بر اسمان الله یعنی قرآن محسوب است چون الله جل و علا می و همگی بر الله یعنی قرآن و اسلام چنگ زنید و پراکنده نشوید. و وحدت و برادری و همکاری سیپری سپری است که از موجودیت امت و همبستگی آن حفاظت میکند و حسن تعاملش با دیگران را اشکار میسازد و این همان چیزی است که گواهی میدهد بر اینکی اسلام روحی فراگیر است که با خیر خود تمام انسانیت را در بر میگیرد و پیامبر گرامی آن صلی الله علیه و سلم کسی است که فرمود بهترین مردم سودمندترین آنان برای مردم است. از اینجاست که تشریع اسلامی انسانیت خود را که معیارهایش مزدوج نبوده و مبادی آن تغییر پذیر نمی باشد برتری داده است. پس خیر را برای همگان دوست داشته و میانی دلهایشان الفت آورده است. و, و از جهت آن و از جهت آن ارزش ها نور اسلام منتشر شده و به جهانیان در سراسر زمین رسیده است با گونه که در رسانیدن این خیر مردانی که به آنچه با الله عهد بسته بودند وفا نمودند، پیاپی پی کار کردند، سرانجام این ره خیردمندانه، پیروانی هدایل شدگانی به سمر آورد که در مسیر جاده اسلام راه رفتند. همان گونه که اهل راسخ، اهل علم راسخ اثری مبارکی داشتند در تحمل مسئولیتی بیان، که از آن جمله مقابله با مفاهیمی نادرست و مغلوط از اسلام است حجاج بیت الله الحرام یقینا از مواردی پذیرش دعا همین موضع شما است ای حجاج ای حجاج بیت الله زیرا که پیانبر صلی الله علیه و سلم در عرفه وقوف نموده به دعا و ذکری الله مشغول شد آن هم پس از خطبه عرفه و ادای نمازهای زهر و عصر بگونه جمع و قصر به دو رکعت و یک ازان و دو اقامت و همچنان به وقوف خود تا غروب خورشید ادامه داد سپس به سوی مزدلی رفت در مسیر راه آرام و مطمئن حرکت می کرد و به از سفارش می کرد تا با آرامش و وقار راه بروند. و در مزدرفه نماز مغرب را سه رکعت و نماز عشا را دو رکعت ادا نمود و شب را انجاس پری نمود و نماز فجر را نیز همانجا ادا کرد و برای ذکر تا روشن شدن هوا نشست سپس سوی مینا رفته و جمره عقبه را با هفت سنگریز پرتاب کرد سپس قربانی خود را زبح نمود و سری خود را تراشید و تحلل اول را انجام داد سپس به مکه رفت. توافی فرزی را انجام داد و به مینا برگشت و شبهای ایامی ایام تشریق را در آنجا پری نمود و در مینا ذکر الله را بسیار می گفت و هر روز جمرات سیگانه را پرتاب میکرد در آغاز جمره صغرا را با هفت سنگریز پرتاب میکرد سپس جمره وسطا را نیز با هفت سنگریز رمی میکرد و پس از هر یک الله را دعا می نمود سپس جمره اقبر را با هفت انگریز پرتاب میکرد و برای کسانی که عذر داشتند اجازه میداد که در مینا بیت نکنند و تا روز سیزده هم زیخجه در مینا می ماند و اجازه داد که مردم در روز دوازده تعجل کنند و پس از اینکه از مناسی که حج فارغ شد و قبل از سفرش توافی و را انجام داد پس ای مسلمانان فرصت این موسم بزرگ را غنیمت بدانید روز عرفه روزی است که در آن این فرمودهی الله متعال نازل شد امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین برای شما برگزیدم و در مورد آن پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است هیچ روزی نیست که مانند روز عرفه الله در آن بندگانی بسیاری را از آتش آزاد کند و الله نزدیک می شود سپس به تجمع حجاج در عرفه نزدی فرشتگان افتخار می کند پس بسیار دعا کند زیرا که الله به شما وعده داده است که دعاهای شما را اجابت می کند و می فرماید و پروردگار شما فرمود مرا بخاند تا دعای شما را اجابت کنم و می و چون بندگانم از تو در من بپرسند بگو براستی که من نزدیکم دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخاند اجابت میکنم بار اله از حجاج مناسک حجشان را قبول فرما و دعاهایشان را اجابت نما و کارهایشان را آسان ساز و گناهانشان را آمرزش نما و آنان را به کشورانشان به سلامتی و بهرمندی بازگردان در حالی که درجاتشان بلند شده و منزلتشان عالی گردیده باشد. و از آنان کسانی هستند که میگویند پروردگار را به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی عطا فرما و ما را از عذاب آتش نگه دار بار الها احوال مسلمانان را اصلاح نما و در میانشان الفت ایجاد کن و علم و خیر در میان آنها گسترش بده و فرزندانشان را اصلاح نما و در رزق و روزیشان برکت بگردان و آنان را به بهشت داخل کن بار اله خادم حرمین شریفین ملک سلمان ابن عبدالعزیز و ولی عهد امینش شاهزاده محمد ابن سلمان را توفیق بده و به ایشان و حکومتشان بهترین پاداش را بخاطر آنچی برای اسلام و مسلمانان و همه انسانیت تقدیم نمایند عطا کن و برای آنان یاری دهنده و ان سرده باش و درود الله بر پیامبر ما محمد و بر خاندان و یارانش با سلامی فراوان باد